الحمد لله رب العالمين صل الله علی خیلیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین اللعت الدائمت و علی دائم مجموعین اللهم حرماتین المشهدین و رحمنا و رحمتک جواه رحمه رحمی رجبه ها خبر از آیه مبارک نبه صحبت شد و البته در کلمات مرموم استاد از الله و, در و کلمات هموز اشکالات دیگری هم هست شد خیلی خوشون نمیاد که این رو شده من. تسبت اشکال رو دیگه دقیق جاور مراجعه مرموم استاد به استادشون مرموم بعد از آیه نبه دو تا اشکال دیگه رو هم مطرح می از صفحه دویس که با قد مروح طلب آنون باشه بعد ما متعرض تا دویس و سیزده دوازده دو تا اشکال رو مطرح می کنن با نه این گرم ناید هم همین کاری کردن یعنی این دو اشکال اختصاص با آیه نبه نذاره بر کلیه عدل ناظر ها با می شونم در اقل بعد از آیات این دو اشکال رو در اونجا این قرد ده دوازه سفر رو تقییم قرد میشیم که بعد انشاءالا توضیح مفصل راجع به اون مطلس توضیح داده بشیم آیه دوم که ایشون ذکر فرد که از سریم ادهی از اصولاً به همین آیه تمثل کردن و امده ازتدارشون بین آیه و حسولا سر این که خبر واقع رو هم در احکام وجهت گرفتن در حقیقت همین آیه بوده چون آیه ظاهرش ناظره به انزال احکامه بیان احکام و حده ایشون هم خوب حالا به دلیل خارجی یا به آیه به خود آیه نبه تمسا کنن و نتیجه گرفتن که قرارت حدیل واقع رو کته خبر خاصه رو بخواهیم به آیه ندر خارجه عدل واحد هم به اطلاق این آیه مبارکه این آیه مبارکه اطلاق داره شامل عدل و غیر عدل میشه آیه ندر اون وقت به اصطلاح اگر کسی تفقق کرد و انزال داد لیکن بود با آیه ندر خارج میشه وقت جمع بین دو تا آیه اختضام میکنه که خصوص خبر عدل واحد در احکام شرگی حجت باشه ما در این همین ترتیبی که در بحث بود اول متعرض کلمات محبوم و استاد به بعضی از مناقشات و مختصر بایشان اون بعد وارد خود آیه میشیم من فرط توضیحاً عرض بکنم آیان قبل از مطالعه خود بحث ایر از خودش حال خود استاد محبوم ناینی یا آه یا میده باشه نگاه کنن در خصوصی این آیه تفسیر هم براجعه کنم این آیه مبارکه رو اینقدار به مجموعه تفاصیل هم چون انشاءالله عرض تایم کرد دوز چند جور آیه تفسیر شده خاطر زماهری که داره که حتی برزی هاش معنای دیگری دیگه چون معنون اصطاد متعرض نشده هم ما انشاءالله تعالی در این بحث به رحبه سریعی که الله متعرضه کلام استاد میشیم یه بسیم یه کنیم تمام شکنیم فردا انشاءالله تعالی در تفص عدل بایانها برید در بیانه آیه اول یه تصویر مختصری رو از احتمالاتی که در آیه گفته شده ارز می کنید در ببینیم آیا واقعا به در درد بابا خود جهر خبر واحد به این معنایی که ما الان داریم به در درد می یا نه ارز کند ازدهی از, از بزرگان احل سنن از قدیم عمقی به بین آیه است و ظاهر آیه مبارکن همون متعارفی بوده شد این رو خوب یک نگاه واقعیت با خارجی میاد در فهم یک درید به ما کمک میکنه اصلا سالالله مثلا کل فرقت من هم تارفه نه مثلا جنگیان خارج باشن هر فرقه یک تارفهی یه از جنگیان برای اینکه که باید آشنایی و قصیلت بیدارو کنن ولی اون ما هم, هم هزاره جوابه راییم بعد برگردن به آنگان منظر برای خودشون در هم گردارون که شاید اون قوم حضر کنن قوم انجام بلن قوم اعمال اداهی رو انجام بلن خب این مطلب من شایی که سه کرد میکرد اجمالا نرزم کنن سه در و افرادی که میانن بردینه ای بر پیلم برد مثلا از راهای دور بودن میامنن یه مدتی میموندن در مدینه احکام رو میگرسند بارها میگرسند واجبات با محرمه باست همون زمانی که بود بعد برمیگشتند به قبیلی خودشون که گاهی هم مثلا هفتصد کلومه هکست کلومه کیلومتر، کلومه کیلومتر، مونسد کیلومتر، هزار کیلومتر هزار بله این که اونها هزار و که این غیر از این جهت این طوری شواش در دنیای اسلام شبیه نیمینا قیل از تحقق و وجوه مرافض علم اون چی که بوده رو به مثلا یک رهیلت که هم برای حدیث می کردن رهیلت عربی سفرهایی برای تحمل حدیث می شد مثلا همین خود بخاری یا خود احمد زن همبردی در بغداد بود می شنفت که مثلا فرزون در شام چندتا استاد هستن اونجا می رفت بخشا می به نظر احمد زن همبرد چند هزار یا دون شیخ حدیث نمی کنه یعنی خب دو رضاق نفر رو درک کرده احوانی سیگنال می بعد به همه ممارسه می کرده الاخره کار روی که فعلاً جشنجرسه. یعنی همون حالتی رو که شما این آیه مبارد که تصویر میکنه برای تفرور دیدید در آخه در نه جهب و احوال در نه سبون همین حالت برای تفرمول حدیث پیشان رو نکنه خب برای نمون چیگه همون حالتی که لوردان نفره همین حالت به اینه پیدا شد که فرسان خراسانی بود در جمعات بغداد میرد شام میرد برسای میرد محکه میرد مدینه میرد یمه میرد در این که تحمل حدیث کنه یعنی به لذا خود که دقیقت بکنی به نظر ما زمان مثلا از فرگودشت زمان فرسان ما اصلا در سال شاه سال سال لاعقل دیویس سال بیشتر نظر دیویس سال، گذشته بود که این حالتی رو که در آی که تصویر شده برای تکامل فدی دهته علاوه بر اون قرائت کل جوات نتیجه مطابقه فدی همین حالت روشن شد همین حالت پیدا شده بود برای تحمل حدیث همین حالت این حالتی که اصلا ایده بولا بشن در این طرف اون طرف قرار گیره سراش صدای صدای دی لازمه یه رحله انتقاد این تقریباون از مشاایلش مختلف البته کسب از در میان اهل سنت خب یه است و زیاد دارن یعنی فرق ما با اهل سنت اینه که اهل سنت زیاد برن یعنی افرادی که مثلا تا شیخ داره تا شیخ 800 تا استاد داره در میان اهل سنت درن. تو ماها هست کنه پس کنید مثلا شیخ طوسی با مثال در کتابه علم خودش کل اون که کتب عثابیشات کل خود ایشون که پیدا شد این که مشایخ بغدادی هستند یک حدوداً دوست تا ایرانی باشه و لو بقیه دو تا یا سه تا ایرانی هستن بقیه بغدادی اما خود نجاشی مثلا نزدیک چه نفره مثلا حدوداً چه کمتر میشه. بشه حدوداً میخوام فرض بگم خود شیخ با این چیز با نجاشی یک کتاب نوشته است لکن شیخ کمتره مرحوم صدوق در مجموعه کتبش شاید مجموعه از 230 تا 340 سی تا سیتا تا صد مجموعه نامه فرمود شیخ صدوق وجه به مرحوم منتقب الدین که از هزار نفر تعامل حدیثی ما هم داریم واسه اینکه اون 그랬ین رحله حدیث اختصار به از سنت ندشه ما هم داریم لکن انصافا چون انسانا در اکثریت مطلق با او روزا قابل پیراست بود عدد ما با اونها لکن انصافا اونها زیاد دارن 1000 تا 900 تا 2000 تا عدد متحولی دارن که مشایخ سراوان ده درazem من این نکته رو خوب دقت بکنید ولزا ممکن بود این این مطلب رو عرض بکنم چون شما تا بیایید آیه تفول در دینی میر از حدیثه الان بحث ما محل در تحمل حدیث خود نده سبب خواهی شدین چه شده این آیه رو برداشتن در بحث حدیث رو برداشتن از, از سال بایی همین حالتی که در آیه راجب تفقه بود در واقع خارجی دنیای اسلام بود که حمال حدیث بود همون حالتی که در آیه راجب تفقه بود همین حالت در دنیای اسلام بود تحمل حدیث باها. ویژه خینافایی به ذهنشون اون چه چی بود خب برای محدثی هم سر رفت، مثلا لو لا نصر به کل سرغته طایفتون لیاقت اتفاق افتدی. با اضافه صد مرحوم آخویی فهم بحث چون امثال آل خویی اینها اون تحلیل واقعی رو بله بیان نمی‌کنه مثلا آخویی در آخر این بحثی که 22 13 آخر بعد ایشون میگه که مثلا در آخرش که تفقه در زمان معصومی لمیه کن بها در بعد تا اینجا فکان و فقه ها فیماین قنون ها و ازا و از خجیت و خبر راب الفقی از این آیت تفقه دیگه به مقتدر آیت سبت از خجیت و خبر رابی خیر الفقی و عدم قول برپس ردو شما این عبارتی. شما این نظر علمی درسته چه رب چه از بار آرید در تفق بود چه رب کسی که مجرد تحمل حدیث میکنه این فقید از ایشون میفهم به عدم و قوله من الان برای شما توضیح دادم از این بارد استبلال با آیه بشن این عدم و قوله بفرست یک واقعیت عینی در جامعه اسلامی از سرن دومه اصطلاح. عوائل قرن سوم یه این واقعیتی بود و عوائل قرن سوم و عوائل قرن دوم این یه ای واقعیتی بود همچنان که در صدر اسلام در زمان رسول الله می به مدینه برای تفقه و برمی گشن و این حالت این خلالتالا بعد عرض می کنن اختصاص به مدینه نداشت و این از نقاط بسیار مهم قوت اسلام و که از نوعات خاتمیت که مسئله انذار رو به عمده فقه ها که اینها برن دین رو نه شده دهن اینکه علامه از, از دلایل خاطبه الا اگر اسلام در آن مدینه میمون خواهی نخواهی خفه میشد اصلا پیغمبر هنوز مدینه بودن اون زرارت ابن کی ازعد ازعد ابن از زرارت به مدینه برای اینکه به مردم مدینه احکام اسلام رو یاد هنوز مکه بودن پیغمبر هرکم در اون بیعت عقبه، این تفش تفقیه دردی این که از اسباب بقا و جاوزانی و ماندگی دینه این خود این مانده لیکن عنوانی که در اینجا هست افراد جو هم تفقیه دردی پیدا بکنن و بعد و لیورد روغو رو من حالا من در توضیح دیگری منشو منوها بودم راه وارد نشده خود مسئله انظام یکی از خصائص نبوت هستن خدا آن ظاهر قرآن میخوان لئنذرکم به کل اولی الی هذا القرآن این انذار رو پیغمبر اکرم بر دوش قهوار گذاشت لئنذرکم و من بلغ این من بلغ اینه تفسیرش اینه ولی یوم ربهم مدارج او الهی اینا برن به قول خودشون انذار بکنن انذاری که اساسا رویه رسول الله چون منذرون و رسول الله روز دقت کرد لا بیه و مندل این معنالا به این آیه بل یوم یقومه و اداره و الیه لعلموا این اجمال و این مطلب درسته در زمان رسول الله به اینو اما در زمان رسول الله تحمل حدیث هم بود خیلی هم طبیعی بود از مثلا عصر مثلا به زیاده از عمر یه سوال میکردن یا از ایوبان و فلان. یکی سوالی از شما من پیش رسول الله بدم که این مطلب رو سیده حامد بزنم. رو خیلی خوب همه امن. اون زن دیگه اون که با شوهرش طلاق خور، طلاق به سقرار داده بود. طلاق با. عمر رو از دی از صحابه مطرح زن که حق مسکن داره مطلقه رو باید وانه این خانوم گفت آقا من طلاق بایدم، فعلا من حق مسکن ندارم. و من گفت از خانه که مبوط به شاعت در بیار جای دیگه بره و من جای دیگه هست دوران ادداره گذه. دقت میفهمیم پس این اما این ببینید این خانم خانمی بیاد به عمر بگه یا به آیشه بگه پیغمبر همبر به من گفت حق مقصن نداری این دیگه مثلث آیه که می حاللو رو نفر میگوه م همه رو دقت اون چیزی من همیشه میگم قبلا دیگه ض در دست اون تصور دقیق رو از مسئله بدین تصور دقیق اینه که مثلا یک زنی میاد بیگه پیغمبر بوشن شد به من فرمزن تو حق مسکر نداری طلاق بایه میده آیا این مصداق آقایه حال الله نفرمین کلی فرقه منون طاقه در اتفاق قبول اون قطعه از مصداق این مصداق آقایه در زمان رسول الله خیلی واضح بود شهرهای دور می اومدن مدتی حالا کم زیاد در مدینه می یا اکثر حالا معنا شده اکثر این آیه چند جور معنا شده این آیه ضد این هم معنا شده معنای که الان اون به میاد ضد این هم معنا شده حالا بعد ترجمه این جور بیاد مثلا می شما احکام یاد بگیرید، بعد که احکام رو یاد گرفتین برید اونجا به خدا میخورون انتظار بکنه لعن لهم یعنی این دیگه به حبرگاه در دواندان رسول الله صدق نمیکن پس هلچنگ بود که دیدی سال دیگه تدریجن سال سال هشتا سال بعد از زمان رسول الله یواش شواش تحمل حدیث هم مثل این آیه شد بلکه در برزه رواییات ما داره که وقتی امام فوت میکنه ادهی از مومنی در بیان بیان مدینه سوال بکن امام بردی کیه بعد حضرت این آیه رو فرمونه فلالله نکارم کلی و این سوال از امام اصطلاحاً تفقه در دین نیست اصطلاحاً. لكن به این معنا اموری که راجع به دین میشه یکی از ماموریت های ما اینه که بریم از اون مرکز سوال بکنیم. وقتی این احوال های دینی روشی که میخوام بگم اینی که که مثل ابن حزم و دیگران اهل سنت خیلی روی آیه مانور دادن علمای ما هم توجه هم که آیین مبارده رب تی به هم تعملن حالا فرسون این کسی بوده آزی بوده، بقال بوده، قصاب بوده ما از افراد ما قصاب و خلال و خلال یعنی سرک فروش یا سرک انداز خلال و کسی که فکر عرضه درست میکنه روغن پنجه سنسل روغن پنجه درستمه حلال میگن اینا با هم رو بهش رو بکنه و جلال، جلال که دیگه پوس می و جلال و خلال و حلال یک بود یک توارفی از روا با که شغلای اینجوری دارن این دیگه سر نمی کنه اصلا اونا نفره این کل دسته این دسته مدینه از ما ایام حج و عمره بوده از اون سوالی کرده آمده بحثا ما در کوفه گفته خدمت امام خودی یکی سوال کرده با میگفتم یا من پرسیدم امام من فرض کردم ما حج شهری رو واسه میفرمم این جوری امام فهم اصل خیرقه کل که اختلاف چرا تمثل کردم از که درم یه باشواش قدیده اجتماعی در دنیای اسلام پیدا میشه که دیروزم ارز کردم خود این آیات منشه بود که جامعه اسلامی و واقعا این رشد علمی ها این, خیال این در کتاب الامام و سیاسه خیلی عجیبه آقاقه داشت اگر آن داشتن خیلی لطیفه این عبارت فوق العاده لطیفه نوشته در این اواخر زمان هارون زمان هارون سال‌های 180 تا 190 خیلی عجیبه 1789 این شی یک توسعه عجیبی پیدا کرده در نه موع سیاست مثلا یک کتاب آخروندی یا صفحه آخر نوشته افرادی هستند الان که به درجات عالی از ثقاحت در خلال ظهور شهری مثلا عمرشون 9 سال یا 10 ساله این کتاب در مجال موع یعنی واقعیت جامعه اسلامشون من در میگم اصلا که من در واقع من چیزی تاریخ رو درست فکر نمیکنم از زمانی که رسول الله در واقع اونواره کلی کرد تا این لحظه ای که من خدمتتونم دنیای اسلام به پیشرصی که زبان و بوده رسیده باشه به لحاظ جغرافیا و توسعه اصلا میگازیم معاصر من با ماشین شخصی خودم از پاریس تاوار شدن راستن تا دو ساعت حالا بس میسن اجازه برداشت چه تو فرانسه یه دو ساعت از پاریس با ماشین فاصله داشت. اینجا جایی بود که لشکر اسلام زوانه هارو رسیده بود. به دقت می‌گید؟ خودم نمی‌خوام. دو ساعت فاصله را با ماشین تا پاریس. اون و عسكرم صابرند و یک توسعه علمی عجیبی هم در بردار همراه با این توسعه با این تمدن به حساب پیدا میشه. بذ هم همیشه میگیم مکتب اول بغداد ما خیلی مکتب پاد و نظیف و خیلی موثر خیلی موثره مثل ابن عبی عمر و یونس و اینها اصحاب این مکتب اول بغدادن که اینها در تندیه حدیث رو حدیث ما هم زیاده حالا غیر از اینکه در کل دنیای اسلام بلکه در کل بشریت معصر بود میگم ابن قتیبه به نظر حالا ارزشش هم توازیه مثلا فقیه عالم بزرگ اونش ده سروسه این چیز عجیبی از کشف این این یعنی اواخر قرن دومه خیلیه به معلومه ما که نه فونزام هستی صحا که اواخر دومه دقت می‌کنید لذا این صحبت رو خوب دقت بکنید که و لذا مسئله اخیریه آخر کار برمی‌گرده به مسئله ادب قلد و فصاحت تحلیلی از این ادب قلد و فصاحت ایشون نمیره من الان براتون عرض کردم از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم همین آیه مبارکه که ظاهرش در تفقه در اون زمان سر می‌کرد در تحمل حدیث این آیه فلولا نفر از کل قدرت اون طارقه و به نظر من سر این که مثلا فرض بگیریم سال 250 سال این ارتفاع می‌شه که با 250 سال کاملا ارتفاع منعقد میشه این استکاز من عقیق میشه که این کسانی که الان میرن رنز و زحمت میکشند و در, در اون زبان با نبودنه و واقعا رخیه انسان سال نگاه میکنه خیال میکنه مثلا داره خیالات میبینه یک عرض عزیزی عزیز از این طرف شرط تا اون طرف غرب شمال جنوب همین کتاب عل... سال سمانی که باید من میخونم واقعا عجیبه حتی به های برخ و مرونگی دل مثلا یک شب من در اونجا اون دهات عجیب و غریبی و اسمی بره که در راه تحمل حدیث شر و غر و عالم رو با نبودن امکانات، هاید الان فرصه مثلا الان مثلا مثال ها زمان ما چاپیه و این کتاب خطی کتاب که با دست می نوشن. با این مرکب در این راه ها اینه حفظ بکنن تو آب و باران و داره در شهر حال خواج و سوالی رو از هرات تا توست میکنی این مثلا با خود ایست کرد. باران شدیدی بود یه اصلا خمخم را میده کتاب ها چیزیر بغیر سیرکت بود که خیس نشد. یه مسافت دیشنان یه با حالت خمیده راه میرم کتاب ها را بیر شد بود که آبو باران یعنی وقتی ایسا نگاه میکنه خب واقعا یک چیز غیر واقعا از را میرم تأثیبی بخار واقعا اصلا انسان بکتش میده از مقدار زحمت و توسعه او و چه بوده چی و از کرده وقت عبارات ابن حزم رو میکنی در اینجا یه مردانش هم شبیه میمبری شده عرباله در خارج شده به اردام ما باشیم و ظاهر آیه باره که تفقه ردی به حدیث نظره ما باشیم و ظاهر آیه از بر اثر گذشت زمان و تمدن خاصی و فرهنگ تمدن که نه فرهنگ خاصی که در جامعه اسلامی پیدا شد اینطور به هر حال این اجمال به نحوه به این آیه مبارکه بشیم استدلال با آیه خوب انواع مختلف داره من خیلی ارز کردم اون راهی رو که مرموم استاد این راهی رو که مرموم استاد رفتن همون راهی که استادشون مرموم آیه ناینی تایی پرمودن ایشون هم خلاصه جمع کلمات شیخ انصاری، این رو مرکب کردن از کردیم اینها از کلمه به استدلال امده استدلالشون اینه که حضر واجب حضر عمل کرد پس چون هزار واجبه پس انزار واجبه انزار که واجب شد یعنی ابلاغ احکام الهی برای در زمین خبر این اگر واجب شد اطلاق داره مفید این باشه ای نباشه یک نفر انزار کنیم لازم دیست که مثلا ده نفر از این چیخان وقتا حوزه درس خوندن ده نفری با هم یاد انزار کل واحده واحده یعنی خلاصه این خلاصه استبلاغ این خلاصه استبلاغ برای اینکه که انزار مطلقاً واجب میشه چون حضر واجبه اگر انذار واجب شد و هزار واجب شد اطلاق داره چه از یک نفر باشه چه دو نفر اطلاق داره چه مفید این باشه چه نفر بله اطلاق داره چه عادل باشه چه فاسد این رو با آیه نبه جمع میکنی نتیجه میشه انزار مخبر عادل واحد یه جمال حضر و عم. این اسمش عوازان اخرایه از عجیل قبر این خلاصه آن ای حالا تقریرش رو می‌کنیم. ایشون فرض ای که سه صف امر رو باید اصفار بکنیم یکی اینکه انیاتون المراد انزال کل واحد من النافرید بعضا من قومه هم. لا انزال مجموع. یه مقدمه هست، مقدمه رو مفهوم نا انزاره. البته از حاجیا میگه اصفار می‌کنه. حاجی احتیاجش نداره. راست هر با اول این مطلب عرفیه. احتیاج به یک مقدمه ای نداره. چون داره که ولیوب و قومه هم که صحیح جمع ورده. دنیای وقت احتمال داره اینجا موارد مجموع باشه عام مجموعی باشه یعنی هر دگی مثلا ده نفر رفتن برای چی میت جماعت تربیتی ده نفر رفتن برای یادگیری ده نفری با هم بیاد بگن حسن اله ده نفری با هم ایشون با نه لازم نیست نفر یک نفر این نفر, این نفر هم صدا میکنه کما اینکه هزار هم لازم نیست برای جامعه برای یک نفر نفر سر. راست درست این مطلب این مطلب درسته اما هم همین که هم با مرگوم آزی هست نیازی بشیست مضافن به این که این ظهور عرفی داره البته ظهور عرفی داره که عام استحراقی کل وحزن وحزنه من چند بار در مباسته عام عرض کردم اصلا معنای عام استحراقی این که به هر فرد فرد نظر داره اما در عام مجموعی نظر به مجموعه و من این توضیح ها را چند بار هر کردم دیگه تکرار نمی کنی. در لغت عرب تونجهی که بنده که دردارن نه عدوات اسمی دارن برای عام مجموعی نه عدوات حرفی عام مجموع رو باید باید کلام اصفات بکنن یعنی مثلا بگه اکره مجموع الالما این مجموع الالما ممکن عام استرابی بشه ممکن عام مجموع بشه حتی اگه کلمه مجموع بیاره اکره این جمعی الالما اکره مل علما که خیلی ظاهره در عام استقراقی وقت در آم استقراقی عام آم رو تو توضیح دادید آم عبارت از لحظیست است نازل باشه به افراد به غیر نظر به افراد لیکن به نحو سریعه یعنی انتباهش بر افراد و شمولش بر افراد به یک نحو واحد باشه این رو استاده میگه نه اینکه بر بعضی به اولویتونو نه به نحو واحد گفت که نسبت آم و انتباه آم و نسبت آم به افراد متصابه بسه اخدام بیک نسخه واحد در یک نسخه واحد در ازدواج. وقت در عام استقرای خوک رو کل خردم رفته. اکمل اولامه نمیخواد هدف تو استاد مسلط. نه نیامدیم فرند که اینجا عام مجموعی نیست. یعنی مجموع وریم. مجموع اقتصادی کردند، مجموع آن امزارو داره. اگه از اینکه البته دزهارو اورفی هر سال کویاد نوشته میشه درسته. یک نکته بنده اضافه کرده شما هم اضافه کرد. اصولاً امم مجموعی باید تصریح بشوشه در لغت عرب یک لفظی رو که دلالت بر امم مجمعی بکنه شما این توضیح رو می دادین که اصولا امم مجموعی عام نیست. چه تسامح داره. یک نوع مرکبه عام نیست. مثلا 20 تا در قم هست تکلیفش این است که اکرام 20 تا با هم یک تکلیف واحد اجزاش 20 سفره نه کل واحده ولی زا ما عرض کردیم اصلا آم مجموعی آم نیست چون در آم خوبده خبت کنید در آم این معنا عرض شده که درش سریان باشه شمول باشه سریان اگر سرایان درش نباشه آم نیست اصلا معنی آم اینی که سریان درش باشه چه آم بدلی باشه اونم سرایان داره اکلو آدم چه آم استقرافی باشه اونم سرایان داره اکلو مل هم عام بدلی سرایان داره هم عام استقراقی عام مجموعی سرایان نداره. مرکبه یکیت فرام دهیم ما در بحث عموم انسر دیم یک عام مجموعی آم نیست اصلا کلا دو این فرام نانیم محاصول اینجا آم مجموعی نیست عام استقراقی دو اصولا در زبان عربی تا اونجایی که بده یاده ماده دو دون آقاییم که بگردم پیدا بکنن هیچ واژه‌ای به ازا عام مجموعی گذاشته نشده. نه حرف داره مثلا در لغت عربی کل داریم که اسمه ال ال علماء داریم که حرفه در لغت عربی مثلا فلسفن تنوین داریم که حرفه یعنی و چیز داریم اکم آدم هم ایه داریم ایه آدمه که به ازا اسمه قیقت میکن اما ما در لغت عربی برای آمه مجموعی نه اسم داریم نه حرف داریم و به عبارت دیگر ما یک مدل تصوری برای عام مجموعی نداریم اگر بخوایم عام مجموعی رو اثبات بکنیم یک مدل تصریحی باید رو بیاریم یک کلام باید رو بیاره مثلا بگیم اکرام بکنه همه علما رو به حیصی که اگر یکی رو اکرام نکردی اکرام درست هر بیستا رو با هم واسه این باید با یک کلام اثبات بکنید چقدر کنید راحت میگیم هیچ نیست هر نیست یعنی یک مدل تصوری در لغت عربی ازار عام مجموعی نیست پس هدف از این مقدمه اولا اینه که لیون زر هم قومهم اذرجاو این عام مجمعی نیست عام استثنائیه این احیای به شعر تعالی فی در و فراهم استادید لكن به نظر ما واضحه هم عام مجمون عام نیست هم ادوات نداره و قطعاً تو این آیه مبارکه تعبیری که دال بر عام مجمعی باشه وجود نداره نخرید و بگم ان يكون المراد من هذا حذر كده زی به آیه است قوت تحفظ و تجنب عملی لا مجرد الخوف نفسانی این نکته هم باید اضافه کرد البته عمدترین نکته ای که در این استدلال وجود داره همین زیل آرسینو قول معروف از بومی اثر زندگی از ازو گلدی هزار میل دو اینجا استدلالشون از زیر آگاه است در حالیه میحزم کلمه حذر رو از اونجا شروع می‌کنه که این حذر در اینجا مراد عمل کردن نه مراد خوف فلسانیست مثلا اینا میاد بگن آقا بهشتی از جهنمی هر چیزی نه هر چیزی یعنی کشیشی از اون قصد شما دید که به جهنم هست ما خوشحال می‌شه خیلی ساده خفتون <تصفح> جهنه میکرد اونجای شما سختر خیلی دید <تصفح> برای این تخلیف و مردو و اونی که ملاتبته با ذهنیت و مردو این تخلیف امزا به خاطر حالت حذر و خوف خوفی به خاطر عمل کردن و الله هم یه حذرون هم یکون المرادمین حذر هو تحفظ و تجنب العملی لا مجرد الخوف نفسانی از وقت این درسته این مذتب انصافه درسته و مراد این است که افراد دیگری که نیامدن به مرکز اسلام اینها منشع بشه با اسلام آشنا باشن ولذا حضر داشته باشند. نکته سومی که هست این است که باز از کلمه لعن هم اضفاده کرده این بحثش رو شاید در خلال بحثای سابقن گاگاه گفتان دقیقا نمیدونن در قرآنی کریم ازی از موارد لحمله آمده و این بحث کردن که اینجا مثل بقیه مواردی که بر خداوند بهم میشه که مناسب با حقیقت با حق مطلب نیست اینم هم مثل همونه مثلا گفتن سمیع اونبسی رو غالبا متکلمی غالبا به اصطلاق خودشون میگن اصلاح این صفات بر خدا به دهاز غایات نه بوادی. یعنی ما وقتی میپرانی سمیعه گوش میگه چون یک آلت خاصی داره یعنی گوش داره با گوشش هر کارو میشونه نسبت به خدا همه متعال گوش نداره اما ارم داره چون انسان وقتی گوش دار ارم پیدا میکنه گفت که الهر رسو بالغایات یعنی جواب های جیگه هم هست و نمیخواب هاد شبیه این هم تو لعله هست این توضیحات میشود این که الان میشوند. چند باره از کرد یک لحاظ یک مدول داره یک لحاظ دیگه مدول دیگه داره مثلا میگن مثلا جهت و برای انشاء و انشاء داره خلق و کلمیز حالا مثلا یک کسی میگه کاش کی من مثلا صد هزار تومان داشتم یک چیزی میشه یه درو میگه این دروغ گفتن نه به لحاظ کاشی صد هزار این کاشی صد هزارتون دروته خلق و کلمیز نداره انشاء میکنه تمنی داشتن صد هزار تومان رو انشاء میکنه اون چه که متصف بکزده اون بیان حالت شخص رو نه خود کلام خود کلام صدقه نداره میگن این آقا میلیاردره میلیاردها پول داره خود میگه کارش کشاورز باشه بیش از میلیون ها برابر صد هزار پول داره این تمانیش میخودشی دقت بگی اون چه بغوچه به این حالته نه به لحاظ کلام به لحاظ مَقْدُول سیاقی، مَقْدُول حالیه. و اینا این مشکلی که پیدا می‌کنه، لعله رو انسان برای چه قاله هم به کار می‌بره؟ یه چیزی که ترجیح داره، رجا داره، حالت داره که این در آینده به اصطلاح این محقق بشه. اصطلاحاً ترجی در مقابل تمنی. تمنی مال حاله، ترجی مال مستقبل. مثلا میگه: "بورو درس بخونم، شاید مشاور بشم. بورو درس بخون، شاید پروفسور بشم. بورو درس دکتر بشم، مهندس بشم." مثلا یا برو این کار رو انجام بوده شاید خود این رو ما در این جو جا به کار میبریم برای جایی که امید داریم، ترجی داریم خب ترجی و امید که میگن نسبت به خدا که محبوب نیست, محبوب نیست. محبوب. اون دلالت سیاهی رو اینجا برده ترجی نسبت به خدا محبوب نیست و سه بگره و آیاتی لعلكم تفک کرو آیات کرو. یعنی فکر رو تفک مذلول لعله به لحاظ لغت یکیه کنه لكن میگن یعنی این کلمات اگر در حث سبحان و مک ابا به کار ببریم مثل همون توزی که ارسل مثل صمین انبثی اونجا به لحاظ قیاس نه به لحاظ مبادی نه به لحاظ این است که بعدش هم لعله مال جایی کران نیست میخوایم پیدا بشه الرحمن صاد به حث الله محفوظ و او کل فاقد و موجر کل موجود در شب عرب و در شب جمعه اللهم یاشهاده کنیم اگر محافظ رو خوندنش باشیم موجه در کل موجود رو فاقده کن. پس در اونجا میگیم وقتی خدا میفرماد در مورد هفته حالا مفقود و وجودی مطلب نیست به اصطلاح ما مستقبلی نیست اینطور مستقبل... م... این طور رویسی مستقبلی باشه و ترجی باشه پس لعله هم یهده هم این هم یه این نقطه لطیفی ها من الان اشاره کردم. حال در وقت تحلیل آی مبارکه شما ما احتمال میدی شما آان دی از اهل ذوق اددی هستن. احتمال میدیم که در همین جهان حقیقی باشه و که نبی این نکسری ای که به زن آی جددا ان میادلهلایلمون این واقعا حقیقی باشه یک فکری اون این تا فردا پس سر ها میید برای حقیقی بودنش مثل کمی و بی نباشه که با غالات باشه نه بادی باشه. اینجا به هر حال لالهم یحضرون یعنی یکی و علیه همون حضر و اولاد نشده در حق سالا اون معنای ترجی ممکن نیست چون چیزی مفهود نیست اینطور نیست که مفهود باشه و چیزی هم به اصلاح خداوند رجاع نداره بر مستقبل گم ماضی و مستقبل و حالش کجاست این جای مستقبل و ماضی نداره صحبت استقبال مطرح نداره البته این مطلبی که ایشون ثمود و شیعه هم داره و دیگه خیلی قدیم دیدیم ما ازkernel la'allahum yahzarun وجوب حذر رو استفاده کردن پس اگر خداوند متعال فرمود لا'لکم تفکروا یعنی یجب علیه تفکر تفکر لا'لهم یحذرون یجب علیهم حذر الاعتبار بلغایات لا بل مبادی مراد وجوب حذر وجوب عمله نه اینکه خدا ترجی می خدا ترجی برایش معنی نداره در اصل این نحوه استدلال البته من ارز کردم تا به یک مناسبه تا این بحث اصولی بسید این هست آغازی ها میکنه که ما گایی تو لغت عرب اینجور نیست راسته این مطلب درسته گایی تو لغت عرب ترجیح نیست مثل علک ترکر و ده. لا, ت... لا توهن الفبیر چی؟, چی؟ لا توهن الفبیر چی؟ لالکه انترکه اول ده را قد رفعه این میده لالکه انترکه من الالکه انترکه من رویسه بیدیو بگو کنم خب <تصفح> که در مسترور این میشه این شما همه جا برای وجود و لزوم نیامده یا برای محطوبیت نیامده راسته این مطلبی هر من از کردم این از تحنیه های لغته باز خود آرزی هم تحلیل بزنیسته من از کردم یه تحنیه های لغت یه که، لعله یا عله در لغت عرب دوامن برای محبوب نیست این طور نیست که برای محبوب باشه که حالا بگیم اون محبوب یا واجب یا مستحبه این طور نیست این در لغت عرب در قطعه حلکه انترک ایوم هم اون داره که شد شد شد لا تو هنیل فقیر نوبرد ده رو قطعه حلکه انترکه نه اینکه این خاضع شدن انسان محبوب باشه مخواد بگه به اسطلاح آقایی نه غ لامه عابره نلاحوارا شاید اینطور به شوزه‌دار بیاد که تو بیفتی به پایین و اون بالا بره نه این که این مطلوب پایین افتادن که مخلوق دقیق یه مدام واجیه جزء حرف داره البته خب درسته این اینو ما قبول داریم خب دقت کنیم اشکال اعراضیا وارد نیست به خاطر اینکه ما قبول داریم اینم به خاطر تنگیای لغته چون در لغت مثلا لام بود ولی لام رو غایت که من درس خوندن که مشعر بشن للاشار مثلا لام دام عاقبته و سفل وال فرعول يكون لام عذاب لام دام عاقبته عاقبته امرون که میخواستن این کار بشه این در نوافع عرب یک نوع تنگنا داریم که یک لحظه واحد گاهی دارای معانی مختلف میشه خصوصیات داره که باید با شواهد کلامی رو فهمید اما در اینجا قطعاً لله يهذرون به حساب محبوبیت این قطعی است اینجا در که با شواهدی که که به معنای به اصطلاح وجوبه یه وقت فرمود شد فرمود برای توضیح های سلام و